يا رسول الله و آله طیبین و طافرین المعصومین و لعظه دائمه و اللهم افرنا جمعی محمدی و وارحمنا و رحمتی که و ارحمه رحمی از شبه مناسبت تعبز مربون شیخ به تقسیم مجاری اصول البته اصحاب بعد از شیخ راجع به این حس صحبت کرد و مطالبی رو مطالب کردم و جواب های که بعضیش رو مختصر از هر خیلی حس نمی مطلب علمی مهمی باشه نیاز به این بحث کشته به جای او در بعضی از اصول و حقیقت اصول به مقدار مختصریشون اول بحثه و فوارقی که ما بین اصول و امارات اساسی به عنوان زیر بنام مطرحه گفتید به جمعون وحثه ای که اصحاب مطرح کردن این نکات رو متعرض بشه راجی به استثاب که مردم شیخ هم در این بحث خودشون استصحاب رو در اولا تغییر تحدیر مرگوم شیخ این بود که ما روح زفیه لخالت و صابره هست شد که آیانی که بعد از شیف آمدن بسه مرمونای نید فرموندن مراد شیخ از این روح زفیل حالت سابقه اشاره است که مرمو شیخ، میخوان بفرموند وجود حالت سابقه کافی نیست برای استسحاب یعنی حقیقت استسحاب اون لحاظه اگر لحاظ نشه استسحاب نیست حجت هم نیست تا لحاظ نشه کافی نیست مجرد وجود حالت سابقه تأثیری نداره این مناسبت ارز شد که توضیحاتی داده بشه که مطالب شالله روشن بشه. ارز شد این که این در وجدان ما کاملا واضح و روشنه که ما وقتی یقین به حدوثی اکشهی پیدا میکنیم در مرحله بقا همون صورت هست اما با اون مرحله یقین تفاوت داره. توضیح این فرق رو میخواستیم ارز بکنیم. و هر سو که دو تصویر اساسی میشه مطرح کرد این که بگید مرحله بقا این مرحله یبینه فرقه میکنه و هیچ نهر تنظیری و تصرفی و اعتباری و انتظاری یا لحظ چیست شما بخاریم در میان وجود نداره بیده همونه شما دیروز با زی صحبت میکردیم دیروز به نظر شما زی زنده بود به همون ادراک هم امروز زی زنده چیز تازه‌ای نشده این همون صورت قبلیست نهایتی که این صورت یه مقدار زعف پیدا کرده یک مقدار قصور پیدا کرده یک مقدار زیغ پیدا کرده یک مقدار ایوه پیدا کرده که با گذشت زمان اینها هم بیشتر میشه هی زیغ با اینها بیشتر میشه مثلا ده سال پیز زده ده بوده حالا اون دیگه اون ادراک ده سال قبل نداریم ممکنه در حواظ تصابق قیده گم شده باشه، فوت کرده باشه، کسی خبر نداشته باشه اید آخری این راجع به تصدیرم تصویر اونی که نه نفس انسان اینطور نیست اون صورت اولیه رو یک نوع ادراکه این صورت دوم ادراک دیگریه این سنخ ادراکش با اون فهم رو کنه. و این ادراکش نوع ادراک ابداعی نفسه هی آن و آن نفس مثل اون صورت در خودش ایجاد میکنه ای از اون صورت اولی که صورت انتبائی بود که با ذهن روبرو شدیم این دو نحوه تصویر رو دیروز ارث کردم خدمت اون وقت ترتیبه اثرش در اصول اینطور میشه اگر صورت همون صورت قبل باشه فقط یک مقدار ضعف و ابهام پیدا کرده باشه یا حتی مثلا چون جدید باشه تا دو ساعت قبل دیده این به اصطلاح اسمش رو به اصطلاح آیان زن میگذارن و همون اصطلاح معروف که یقین به حدوث مسابق است یا ملازم است با زن به بقا همون یقین حدوث چیزی دیگر نیست لیکن در مرحله بقا یک مقدار ابحام برای او پیدا میشه سلام نرکن یک مقدار زیغ برای او پیدا میشه فرق نمی‌کنه کنه یک. یعنی مدرک من برای اینکه دیروز زنده بود همون رویه که بود که دیروز انجام دادم چه در نیست، همون همون حالا در نسبت به دیروز یعنی ایجازه نسبت به دیروز زن توضیحاتش هم گذشت دیگه تکرار نمیست خب همینه از بخار بکنم این یک مرحله اگر این بنابش خود جبس بشه این حکمش حکم مثلا خبر واحد یا اجماع به تصویرشیا. حکمش حکم سایر امارات. ما عسكرین در امارات برخورد ما با متن واقعه. نه در برخورد ما با صورت علمی خودمون که با اون صورت چه کار بکنیم. لذا در این نحوه حجیت اگر بنا استحاب استصحاب حجت بشه، میاد چیکار میکنه این زنگ رو معتبر میکنه پس موضوع خودش تحقق داره حجت دلیل حجیت دلیل اعتبار میاد برای او اعتبار قرار میده اما دیگه تنظیحی چیزی نمیکنه حالا چون در به حجیت همارا مبانی مختلفی وجود داره جهل مماسل هست یا جهل بدل هست جهل خفن ظاهری هست همه خود مواصل باشه جهل نمیدونم شبیه جهل مماسله مسئله به اصطلاح تعجیز و تنویر هست، تنجیز و تعویر هست. مسئله تطمیمکشف، sebenarnya تطمیم کش. به متأخرین به خاطر اینکه معنای مرقوم ناینی بوده، بیشتر کش شاره میاد اون کشف ناقص رو تمامش کنیم و ایشون هم در این جهت اضافه بر اینکه مختصای قاضی و اصولی میدونن. هم تو که به ظاهرون حدیث مکاتبه هست توقید لا ریالهی سل عهد من موالینا از تشکیفی ما یروی همنا سقاطون هم ایشون تطمیقه از همین روحات هم در بوده. چون شما وقتی که الان زید رو زیدی دیدین صد درصد. سه روز که گذشت میشه 90 درصد ده درصد شکل میاد میانگه این شک بردار لیسه لعهد تشکیفی ما یروی همنا تو شک نکنید وقتی شک که برداشت میشست از دستا اینم هم تطویم کشف مبنای مرون در واقع خود جیه تطویم کشف به این معنی که خود اون چیزی که زن آوره خودش یه کشفیگاره اما این کشفش ناقصه شاره او رو تمامش میکنه و لذا مبنای خود جیه تویشون برای شک تصویر نمیکنه، چون شرح اصلا کشف نداره جده شاره بیاد چی رو تطمیم بکنه خب در اینجا اون صورت زنی شما از حیات زید دارید شاره امیاد این زن شما رو تکمیل به علم میکنه تکمیل کشف میکنه میگه سر در سر لاغوز لعهد من موارینا لیز لعهد تشیفی ما یعوی هم ناسقات و در اینجا اگر دقت بکنید شاره زاویه نگاه نمیکنه خود همون مطلع رو نگاه میکنه ذكرت الأشياء ما لها قابلية ولا ليس لها محدودية وقت معين في الحياة زي الذي بعديه اليوم يمكن أن يموت حال الأخبار <سؤال> ولو واحدة ساعة عنه يموت لكن عندما يمكن الحكم كذا تنفر الصلاة والكده هذا الحكم لا يغيّرون الزمان والمكان فأخفر بين أخبار الأخبار بين حكم و بين أخبار شرعون جمع يدير فرسوين آب كور نرود هذا الماء لم يكن كورا فتاة نجز فان ربع كر مثلا فالببين عليهم وإلى نصار قرن لا نبي نجس ونعمل هل الشارع يحكم بالنجسة في أم الآن في الآن الأول خيار الغابن كان ثابتا نقرب بمجموع الروايات ولا ليس فيها رواية صريحة في خيار ثم الآن الثاني والثالث والرابع نسس في البغارفة نسس في البغارفة نسس في, في البغارفة نفس یه توه روشنش شاشه ها ان شاء الله تعالی مصادر روشنش روشن اون وقت این یه نحوه اگر بخوایم این رو تشریح بکنیم این مسئله اینکه پس نما این بنده اینجا نشستهم دارم صحبت میکنم شما قلم می‌بینی شارم میاد می‌گه این فلانی بود حالا هم زاویه ای رو نگاه نمی‌کنه لذا بنابر اماریت استصحاب هیچ زاویه مورد دید نیست خود طرف خود شهر، خود مدرک، خود واقع، نه مدرک، خود واقع رو نگاه میکن اما شما من که اینجا نشستم، میگم یک زاویه نگاه کنید، شما نسبت به تخت، نسبت به این دیوار مثلا، اما نسبت به اون دیوار مثلا خلف دیوار، نسبت به این یک ببینید زاویه می‌دید. شما گاهی اوقات میان هم همین صورت رو زاویه می‌بینید. اسوت به این طرف دست راست، به اون طرف دست چپ. شما چپ این دیواره، چپ فلانی هستین. یه دفعه میگی زید زنده بود، حالا زنده است، نظر به اینه. یه دفعه بخوای بگید مثلا پسر عموی یعنی میبینید این زید از یک کسی به دنیا آمده اسمش پدر می‌ذارید، خودش رو پسر می‌گی. با یک نفر دیگه با از یک پدر دنیا اومدن برادرش او می‌گین، اخوّه. میید یک نسبتی رو لحاظ می‌کنی. اگر خوب دقت کنید از قبیل اول باشه یعنی ادراک یکی باشه ادراک اول تام بود ادراک دوم ناقض هیچ نحل تصرف ایشاره نمیخواد اما اگر ادراک اول ادراک دوم مثلا ادراک بیگری بود ابداعی بود چون ابداعی میشه خوب به خط بکنیم ابداع تصرفه تصرف زاویه میخوان این دو تا مثلا شما میگین زیل خب زیل زیل دیگه درشون میگین زیل آمد درشون میگین عصد آمد شیر آمد تا گفتی شیر آمد تصرف کردیم. این تصرف رو باید زاویه بشین چون تصرف بدون زاویه نمیشه. مثلا پس شیر یک هیلتی داره در خلو می شیر آمد عصد الله و عصد رسوله علما نموشن شیراکی باغش میگن دارن رشد نگرفته چون هیبت سازه قرار نداره سازه ای گفت تا توانی میگرید از یار بعد یار بعد بدر بعد مار بعد اصطلاح مار بعد مار های هستن که هستند پر که طغ میپرند انسان یا مار های هستند که اون سمشونو پرتاب که اصطلاح مار بعد اینه مراد ایشون مار بعد یعنی خودش اونجا هم سمشو پرتاب کنه آدم میخوشه ولو با آدم نزدیک نباشه یعنی سم نزنه میش نذره میگه یاره بد دست از مار پز از اون هم یاره بد دست ممکنه ممکن یاره بد این در یک کشور دورم باشه باز هم مورد به حال شماست مثل مار بد که شما رو می‌کشه از راه دور یاره بد هم همینطوره دقت میکنه این میاد زاویه رو نگاه می‌کنه این خرده نگینه این یکی با اون یکی روشن شد این خیلی ظریفه اگر امارات بود زاویه نگاه نمی‌کنه اما اگر ابداع شد ابداع که شد چی میشه؟ یعنی تصرف باز بکنه ای بگه شما همون صورت ببین همون صورت ببین یعنی میاد شک شما را توی شد تصرف لیسه فهم نکه کنی که علا یقین من وضوعه آمد زاویه نگاه کرد شک رو که الان بعد از خواب پیدا شده خواب نید؟ چورتی یا یعنی خوابید یا نخوابید؟ سوال زراره اینه امام میفرماست اینکه این اشخاص شا... میاد این شک رو مندکن در یقینه به وضو نگاه میکنه این ذرافت کار سوال این کاری که اصولین متاثر شیعه رفیدان اینه خوب دقت من یک مثال دیگه بزنم که خوب براتون روشن باشیم ما تو همین حدیث خوندیم لیف لحظه عہد من مبالی ما یروی عن ناسواتنا اگه گفت شک نکنه بیرین تعبیر شک نکنی یه تعبیر این نمه شک فی فیشه این لمتا جزه فا ادا جزتهو فا شک و کلیتر بشه بیرم تعبیر دیگه فا ادا جزتهو فا شک و کلیتر بشه آیا این دوتا شک یکی هم آیا این دوتا لسان روایت یکی هم دقیق خیلی ظریفه یه دفعه میگه شک نکن یه دفعه میگه شکت کسلی درش مثلا اگر خبر ثقه آمد در خلاف استصحاب من با مساد نمیگم مثلا استصحاب برابر مصلحت اختصار میکرد که وقتی این زن حرام باشه روایت چند تا به واسطه نمیری چند تا روایت داره که حلال جایزه بعدل اختصار جاید. حالا دقت بکنید این نسبت این فن کار اینه در یک روایت امام فرمود لید ترکه از تشک تو حق شک کردن نداره شک نه اونجا هم گفت که الا تنقل یقین به شک مسئله ما مانهنفی هم مورد استصحابش اگر شک کردیم این بر حرمت بس بقا حرمت بز. حرمت هست پس در اینجا میگه تو اگر شک کردی اون یقین رو بیار اون یقین ما حرمت بود شکم کردی نسبت این دوتا چیه لی سلکت تشکیج با روایت لا تنقضیل یقینه به شک این دو شک با هم چه نسبه دارن اینجا یه دو این و فیشه این لند ها جزهو جز فا شک و کلیت بشه این شک, دو تا بشه باطل شک و, ای فی و کلیت بشه نهبتش بالا تنغازل یقینه به شک چیه دوتا شک از شک داره شرس ده تسابق بکن تبقه لا تنغازل یقینه به شک شما یقین داشتون رو کوب جا نهب به جا بیادی یا نمازون باطل منز تبقه این لند ها شک و بشه نماز شما درسته فرداد جستبو فشک و بشه. روشه نسبت بین این دوتای چیه لا تنقضی یقینه به شک با اون روایتی که میگه تشکیک نکن شک نکن با این روایتی نسبت لا تنقضی یقینه و شک با این روایتی که میگه فشک و بشه. روشه تعمال گرد آ، این زرافت بحث از کردم خیلی از زرافت ها رو بزرگان و اصول مترخیر شیعه مترده سدن که اصلا در قدیمی ها نیامده این دو زهن بود آی خویی میفرمو از اون که میگه تشکیف نکن نسبتش وروده اون که میگه تشکیف نکن نسبتش وروده اون که میگه شک که تو عرضش نداره نسبتش حکومه اونجا که میگه شک نکن این نصفت نصفت وروده دیگه جای استصحاب نیست نه این جای استصحاب نیست نوبت رو نمیرسه مثلا راجع به همین زن که در برمت وقتی شک میکنه روشن شد وقتی خبر صحیح آمد روایت آمد استثاب چند تا آمد و از به کار معارض هم نداره از تو توفه اون معارض داریم معارضش قد اینه که مثلا قصر باشه بشوره با الا غیر از اون نداری احتیاج به قصر و اقتصال نداره معارض هم نداره تشارت رواده بلا معارض نسبت بین این دلیلی که میگه لا قضر لعه هزه من مرواد شک نکن بالا لا تنقضیل یقینه به شک که الان هم ادهی از هواهر سنت حرمت, حرمت برد قالم بخاطر استصال استصال بقا حرمت. نسبت این دوتای چیه؟ آه خوی نسبتشون نسبتشون وروده چون اصلا آمد گفت شک نیست اصلا شک نکن نمیخواد بگه شک و کلیسه بشه نمیخواد تصرف بکنه همین که گفت شک نکن به مجردی این دیگه اصلا جایی بحث نیست جای تربیر نیست مخصوصا دو تفسیری که مرحوم نایین داره ظاهرم آزگوی در خیلی جا حرف استادش رو برموزن برز جایه بازوش شد نا اینی معنی حجیه توی شما رو نا اینی ابارت از تصمیم کشته، این خواهد آمد یعنی میاد, میاد میگه علم شک نه، لازم بازیل یقینه به شک اصلا دیگه شک موضوع نداره اصلا شک نکن دیگه شک جا ندار اما در لسان قاعده فرات تجاوز نمیگه شک نکن میگه شک ککلی میاد تصرف تو شکت میکنه شک ککلی تو بشه میاد یک تصرفی میکنه میگه این شک ارزش نداره پس لا تنقضیل یقینه به شک بعد از این تصرف شاره خب به قطعه بعد از این تنزیل شاره لا تنقضیل یقینه به شک اصلا موضوع نداره یقین هست شک نیست بعد از تسر رو این دقیقه این زرافت کار حالا ما مخیرم یه مقدار این بحث رو توضیح بیشتری بدیم که آیا واقعا همینطوره یا اقتماعات دیگری هم هست که اینشالله خلال بحث روشن اوشن نشون که مخیرم بحث جمعی روش کنیم بیگه اینشالله تفصیلش در همون بحث تارض و اصول که یه اونجا مفصل تر باید میترد شد خلاته یه ن میگه شک نکن دقت بکنین شاره نمیاد چیزی رو میگه این صورت ذهنیه تو شک نکن. و اگر استصاب رو جزو امارات را خوب دق کنین زاویه نداره نمیاد حالت شک شما رو نگاه بکنه نمیخواد تو شک شما را بکنه حکم استثاب خبروارد میشه. را نمی کنه. در خبروارد چی کار میکنه اشاره؟ در استثاب میکنه. در استثاب نکتهش اینه که یقین به حدوث یا ملازم یا مسابقه است با زن به بقا که شما زن به بقا داریم. میدونید باقیه. این زن با شک همراهه. همون دقیقی که میگه خبر وارد قجته این دقیقی میگه استثاب قجته در اینجا اصلا حالت شک شما رو نگاه نکرده زاویه نگاه نکرده لحاظی چیزی در نظر نگرفته اینه که معهوم شیخ هم فرموده اندوهز معهول حالت و سابقه نقطه همینه. چون شیخ قائل که از باب تحبود قجته از باب اهدا قجته نه از باب امایت، اگر باب امارییت بود و حالاس سابقه وجود حالتابقه، بنابر امایت وجود حالت سابقه کافی ما چیز دیگه بخیم. اما بنابر تعبد یا اصل عملی بوده خوب دقت در اونجا شارع میاد تصرف میکنه. یعنی برداشت اینه که، اگر خوب دقت بکنیم شما هر آن بعد از آن وحدت یک صورتی نفس ابداع میکنه یعنی نفس ما صورت فراوانی رو ابداع میکنه اگر شارع آمد اون حالت شک رو به یک لحظه در نظر گرفت اینجا لحاظ میاد اون وقت میشه اصل عملی چه لحاظ مقام لحاظه این سعوزی خود داره چون اون واقع بود واقع خودش محوظه در اون چی که در فقه ما الان محرهه و در اعتبارات قانونی خوب دقت کنید دو جور لحاظ شک میشه کرد. یه جور لحاظ شک رو بکنه به لحاظ جری عملی تو بشینگن اون اصول غیر محفظه یه دفع لحاظ شک رو بکنه به لحاظ اون توسع یقین یا تحقیق موضوع مثلا این ملکه که یه دفعه می شما اگر عبایی دست کسی دیدی ازش بخر و اشغال بسروش رو بخر ازش بردم ببینید آمد شک که شما رو در نظر گرفت حالت طرف رو هم در نظر گرفت که در این عبا تصرف میکنه شما شک دارین ملک کست یا نه نیمیگه میلی که میاد در این حالت این شک رو به نسبت به اون حالت در نظر میگه میگه بخردش ببینید بخر چون لحاظ اون سعه و داره این یک مقداری اوسعه این لحاظ اوسعه زیر این لحاظ دیگه این آها که اونم توش بخرد و فروش هست در این جوجا زیرش به قید خوردنه پس دو جور لحاظ اساسی میتونه انجام بده و لذا این تصور اینی که شیخ فرمود اشکل بوه زفیل حالاست سابقه اختصاص به استثاب نداره در تمام موارد اصول شکل حاضر میشه چرا؟ چون در موارد اصول واقع احراز نشده شما ذن به واقع اهم نداره اگر زن داشتی اون از باب امارات بود به و لذا در باب اصول تنظیه همیشه این شبه قوی. هموشه اصول تنزیلی چون خیلی قویه هست که آیا اماره یا اصل عملی؟ مثلا داره تصرف میکنه آیا تصرف موجب زن به مالکیه؟ بیشیم اماره مثلا همین قاعده فراغ رو مرموم استاد اماره میدونن خلاقا مشهور میگنم چون یک فهم اغلایی هم هست هر کسی که مشغول کار باشه بعد از کار شک کرد این کار انجام درست دید اعتران نمی میگه که وقت کار مشغول بوده ولذا طبق این تصور ایشان این قاعده اغلایی هم مخصوص از به جایی که انسان وقت عمل حواس جمع باشه اما که وقت عمل پریشان باشه دیگه قاعده اغلایی که جاری نمیشه لذا اگر حاشی اغلایی شخصیزه باشی در هر جا که قاعده تجاوز یا فراغ رو جاری میکنه فراغ می‌ذاره، تجاوز ازنش شبهه داره چون اینون... یا تجاوز ارجاع به فراغ یا فراغ تجاوز شد، الان برایم شک دارم که ایشون اشاره کنه. خود ما تجاوز ارجاع به فراغ بودن، قاعده یکی فراغ. استاد رو الان نمی‌تونم بگم، طول زمان پیدا که فراموشش. هر ازم به هر ایشون ایشون فاصله فالتایب می‌ذاره معل التفاظ، معل... این نقطه معل التفاظ ایشان اینه. پس اونجا نقطه اینه که آیا قاعده فراغ یک اصل تعبودی اگر اصل تعبودی شد توش التفات شرط نیست چرا؟ چون لحاظ میکنه شما بعد از عملی خب دکت میکنی فراغ از عمل و شک این شک رو داره نگاه میکنه به فراغ از عمل چی میگه؟ میگه تو انجام شدی حالا مفادش انجام دادی یا صحیح هست این شد معروف بین اصولی مفاد قاعده فراغ صحت عمل مفاد قاعده تجاوز وقوع جزء وقوع مشکوک یکیش ناظر به وجوده یکیش نظر به صحت شما بعد از نماز شک میکنید نماز سعی خوندین نه این قاعده فراغه اما بعد از رکو بعد از ر... در ثلث شک به رکو انجام دادید یکی در شک در وجوده یکی شک در صحت که به نظر ما فرقی نمیکنه الان تو زیادش تو قاعده فراغ تجاوز الله تعالی به هر حال ایشون می فرماید باید التفات باشه چرا؟ چون ایشون قائده را اماره گرفتن وقتی اماره گرفتن در شک لحاظ نشده چیه در نظر گرفتن؟ هر انسانی به میدونه وقتی مشغول کاری بوده یه سفره نوشته بعد رفته خوابیده بعد شک میکنه اون سفره فلانجیش درست نوشته؟ یا نه اگر میگه حواسم جمع بود و ملتفت بودم و فکرم جمع بود درست در اما اگر دیگه نه من پریشان شدم، فکر کردم باز شده، چیزی نشه، درست نشه. ایشون میگه دیگه قاضی، صلاح اونجا جایی نمیشه. نمیشه آها، ایشون فرایض شک نمی‌کنه. سلام، همینش آدم تو این حالت بسیار استعمار. نه، ببینید. عمو اجازه بدید، اجازه بدیم. اشتباه نشه. شک هست، اما لحاظ نشده. شما در خبرواقعم شک دارید. شما تو خبر رو چ نمی نمیاد برایتون تنگین وظیفه در حال شک بلله هااض اون.زشه میگم شک رو چجوری نگاه میکنه شک و چجوری؟ مثلا شک رو در رک نگاه میکنه بالا هااض این اینکه شما در قرت رو انجام اگر اونجا رو نگاه میکنه خب اصل آدمرک. میاد شک نگاه میکنه در حالی که شما در طریه هستی این قبول میکنه که در بلا کرد من بحثم همینه در اماره این کار نمیشه نه که در اماره شک نیست اماره در بونده شک نمیارنه نگاه نمیکنه شک رو با اون زاویه این فارغ اساسی پس لیس لعهد من موالینا از تشقیق این است این اصلا میگه تشکیک نکن. دقت می‌کنی؟ اونجا میاد رو شک کتررف میکنه این شک فی شیء لم تجزه و فی ادا جزته ف دکاتهانه. اینها منشأ اضرافت‌هایی بوده که اذه بین اینها خلق کرده. حالا شما ممکنه توی نمام فکر می‌کنی من درمی‌فهمم؟ آیا در باب اماره همینطوره میاد شک رو لحاظی نگاه میکنه؟ مثلا شما شکل در حقیق دارید میگه آشک نکن دلحاظ این که زراره گفته اینجوری نگاه میکنه؟ دقت کنی؟ یا نه اینجوری نگاه نمیکنه؟ میگه زراره سخه بزرگوار آمد از ما نهاته شما بهتون پیدا میشه یا مثلا شد درجه 70 درجه 90 درجه نمیاد در شک که شما تصرف کرده نمیاد در شک که شما تصرف بکنه از زاویه اینکه این کلام از ضرر صادر شده اینجا رو دقت بکنه نمیاد در شک که شما تصرف بکنه از این زاویه اما در اصول عملیه از اون زاویه تصراف میکنه این خلاصه بحث پس در باب استصحاب اگر گفتیم یقین به حدوث یا مسابق یا ملازم به زن نببغاست اگر بیار خصرفی بکنه میگه شک نکن زاوی نگاه نمیکنه اما اگر استصحاب شد احسا شد میان نگاه میکنه حالت سابق رو ببینیم فهم نکه کن تا یقین من وضوعه ولیسه لکن تنگذل یقین به شر شک دنیا میاد در حالت زاویه وجود یقین سابق نگاه میکنه وقتی اینطور نگاه کرد میشه تدور شما مثلا در باب احتیاط شک میکنین که این قطره خون در کلمی که از این دو ظرف افتاده لکن به این لحاظ که دیدی یعنی اینجا رو میبینی افتادن قطره خون در هر دو رو میبینی و از این زاویه که وجود قطعه خون به نهوه علم طریقی نه موضوعی و احتمال هر دو هم متقارب یا متساوی، این شک شما رو با این زاویه که نگاه میکنه میگه اجتناب بکن اینجا میتونست دو تا بگه بگه هر دو نجزن این یک نوع تصرف میتونست بگه از هر دو اشتناب بکن یک نوع تصرف کدوم تصرف اوسعه و سباکتره تصرف سباکتر اونه که بگه عمل بکن این خیلی سباکه اما این که بیا تنزیل بکنه بگی اینجا اصلا این نجسه یا این که این سنگینتر در و آ... آیت باقا. و لذا تبر این تصوره، اگر شک کردین اصل محرز است یا غیر محرز انصافا مقدار مسلم از. قدر متیقن غیر محرز قدر متیقن غیر محرز به تعمل کردی؟ قدر و مستهدن اصلا غیر محرسه چرا؟ چون این مقدار از تصرف که نازل و عمل باشی این قدر نمیشی فرق. اصلا تصرف در اون شکل رو بر این نگاه کردن و ادعا تصرف بدون نکته امکان نداره در تصرفات ادبی هم همینطوره در تندیلات ادبی هم همینطوره این شیره یا زید مار حتما نکته رو با نظر بگیده بدونه در نظر داره, داره, داره, داره نقصه. نقصه که ده نکته کلی میتونه که می بگه بدل از خود بدل هستم و تنزیل معنا داره لغو میشه مگر برای شوخی مثلا مثلا کسی بگه داره که ما گروهی نزدیک آب نشسته سودی مثل گروهی دور آب نشسته خب این هم تنزیل مثل از خود خودی خودشه این از واوی شوخی میمونه کسی بگه به الله تنزیل که معنا تا نقطه نباشه تنزيل و تصرف معنا نداره اون بسیر ترین نکته جریع عملی بالاترین نکته تصرفه در خودشه دقیق این در عرف هست و لذا ما عرض کردیم مثلا نصیب ببینید در جاهلیت سعیشون چون بیشتر درامت یعنی تمام درامت نبیشون مکی چی, چی که نبود در چی تو مکه نبود درامتشون از این حجاج و ضبار و زیارتیه که میامدن <تصفح> از راه اینا کس کاری برشون بوده یه تجازه این که داشتن که سالی دوباره ندی به یمن یا به شام رست دقت میکنی خب این ها میانه محاسر که اگر هشت تا بشه کم میان تو زمسون بشه کم اما در یه کاری کردن که هشت همیشه تو بها <تصفح> این شد نفی حالا این دو جور از مجموعه روایات روایه در میاد یک اینا میامدن میگفتن خب دقت بکنی امسال الان مح مثلا الان زی است، سه سال که زی تو بهار بود میگفتن آقا سال دیگه توی محرم بیاین حج در حکم تصرف می‌کردن سال دیگه عقب بندازین ولی چی میشه اینکه که محرم میشه توی بهار سه سال تو محرم نمی‌آوردن باز گفت با سال دیگه مثلا توی صفر بیاییم این یک نوع تصرف بود در نسی. یه نهری دیگهش که ظاهرا اینطوری همین درست باشه میومدن میگفتن ماه عقب افتاد سال دیگه محرم در سه سال محرم در بود یعنی در که میگفتن حج انجام داد محرم بود سه سال سفر بود سه سال در اول بود همون سالی که پیغمبر اکرم هجرت فرمودن به عنوان به مدینه وقتی مشرکین برای حج آمدن در ذی نبود اصلا شعبان بود اون سالی که پیغمبر هیچه از اون سال زیهجهی که مشرکی گرفتن در حقیقت کعبان بود سالی که پیغمبر رکتن به هشتشی بودن هیچه سال بدا زیهجه زیهجه بود چون بعد سال شبال بود بعد سال زیهجه بود بعد سال زیهجه زیهجه بود نزا پیغمبر اطلاف فرمدن نصیرو. این عین همونه تصرفات فرم نمی‌کنه. یه دفعه تصرف در گفت میکنه میگه آقا سال آینده محرم محرمه حجتون تو محرم انجام بدیم در مورد وقوف به عرفات هم که فقه های ما فتفا میزن با سنی ها مثلا موافق باشین اینن همین دیگه ایچ فرمانو کنه دو جور فتفای فقه های ما تصور میشه میگه آقا امروز که این سنی ها گفتن نه هم یا خود میگه این روز تفاوت همه یا بیخود همه های امروز موقف نیست امروز هشتومه لیکن چون اینها ایستادن شما با اینا بیشتی این یک نحوه تصرف یک نحوه دیگه تصرف نه اصلا چون اینا ایستادن امروز نومه امروز واقعا موقفه پس دقت بکنید، این اختصاص و اصول عملی نظر روشن شد یه قایده عامم شما گاهی تصرف در ناهیه حکم میکنید، این اصحاله گالی تصرف در ناحیه موضوع میکنید گانی میگین آما اگر جنسی و درست کسیدی شک کردین شک. تا از او بخر ببینید این میاد شک شما رو به لحاظ تصرف او میگه شرک و لیزه بشه لیکن چجور رو حکم میکنه میگه ازش بخرد یه دفعه میگه نه اگر درستش بود تصرف میکرد اگر شک کردی این تصرف مطابق است با ملک این ملک اونه جمعی آثار ملک وارد میشه اگر گفت ملک است میشه اصل مهره. اگر گفت بخرد میشه اصل غیر محرد اگر مجرد جریان عملی بود از کردم روز مرحوم نایلی اینجور تصویر میکنن که ما در باب احکام تارتاً این پیدا می اگر علم پیدا کنیم چهار نقطه پیدا میشه یک وجود یک صفت نفسانی خاص دو وجود یک کاشف از حکم الهی سه انکشاف و چهار جریع عملی مثلا واجب انجام بودیم حرام و ترکم اما اگر اماره آمد خبر واحد آمد سه چیز پیدا میشه اولی که صفت خاص باشه پیدا نمیشه اما دومی و سهومی و چهارمی پیدا میشه یعنی کاشف داریم خبر زراره کاشف هست حکم الالی منکشف هست مرحله ثبان جریع امری هم عمال. خبر زراره گفتیم مثلا لحم حرمه و حرامه نمیخوریم وشیشون فرمیم فرمان که اگر اصل موضوعی آمد اصل محرز آمد اصل تنزیلی آمد دو تا پیدا میشه صفت خاص نیست کاشف هم نیست چون اشون قالب ترک بوده اگر استثام رو اماره میدونست مثل خبر واحد بود کاشف هم نیست اما منکشف هست ببینید چرا؟ چون گفت علم کن تا الان یقین من وضوع اک یعنی که اون منکشف هست وضوع هست نیمیگه تو کاشف داری میگه منکشف هست جرگ عملی هم سبقه اما اگه اصل غیر محرس شد نه صفت علم هست نه کاشف هست نه شاب واقع هست فقط جگه عملی این تقسیم بندهی ای که ایشون فرموده یکی آقای از من پرسید کجا نایینه گفته من به نظر هم توی توالد ایشان هم دیده باشم اما الان تو زهن هم نسبتی بودم چون خیلی وقتی من فوادی نهیم بسمان دشنگیدم من این مطلب را از درد من رو آقای از کلام ایشان نمو از من الله اما به زن نقریه من توی تقریاتیشان هم هست زن اگه چنین دریم مثلا سوال شد توضیحش اینجا عرض بکنم من از مقوم آی بوجونی درس می‌خونم فعلا موجود داره علاوه اینکه اجتماعکان یادم میاد هر تاریخویم تو درس میفهمم از ذائ خودم نشینم از آی بوجونی نشینم از آی ازای آ... از خودم به هر حال پس بنابر این این توضیحات ما کاملا دیگه تا اینجا مطلب رو روشن کرد فرق بین اماره و اصول به اینکه استصحاب چجوری چوبون... جزو اصول بشه یا چگونه جزء امارات بشه و فارق اساسیش و یکی دو تا نکته کوچولو هست که ان فردا دیگه بحث تمام می‌کنه و شاء چراش اینه برای شما فکر کنم مثال روشن شد چراش اینه که اگر نگاه به ذنش می‌کردن شک رو زاویی برنسی نمی‌کردن به وجود اماره اینا میگن وجدانن این طوره اصل موهر در اصل موهر کلا همینطوره یه یک تصرف در اون رتبه بالا میکنه نقص ترو در روشه عمل